محلت لکن بهیمت الانعام ایلا ما یتلا علیکم غیر محلی الصید و انتم حروم این الله یحکم ما یرید به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید چهارپایان پایان و جنین آنها برای شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خانده می شود و استثناء خواهد شد. و به هنگام احرام سید را حلال نشمرید. خداوند هر چه بخواهد و مسلحت باشد حکم می کند، يا أيها الذين آمنوا لا تحيلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلاءد ولا القلاءد ولا من البيت الحرام يبتغون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 این اللہ شدید العقاب ای کسانی که ایمان آورده اید شعائر و حدود الهی و مراسم حج را محترم بشمید و مخالفت با آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بینشان و نشاندار را و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او میآیند اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، سید کردن برای شما مانعی ندارد و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام در سال حدیبیه باز داشتند، نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند. و همواره در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و هرگز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است. حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والمؤكوثه والمتردية والنطيحه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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام اضطر في مخبصة غير متجانف لاثم فإن الله فإن الله غفور گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زنجیر کشته شده و آنها که بر اثر پرد شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند. و باقی مانده سید حیوان درنده مگر آنکه به موقع به آن حیوان برسید و آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بوت‌ها یا در برابر آنها ذبح میشوند همه بر شما حرام شده است و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهای تیر مخصوص بخت‌آزمایی تمام این اعمال فسق و گناه است امروز کافران از زوال آیین شما معیوز شدند بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به قضای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند مانعی ندارد که از گوشت های ممنوع بخورند خداوند آمرزنده و مهربان است یسئلونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکنوا مما امسکن عليكم و اذکروا اسم الله عليه و الله این الله سريع الحساب از تو سؤال می چه چیزهایی برای آنها حلال شده است بگو آنچه پاکیزه است برای شما حلال گردیده و نیز سیده حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده اید پس از آنچه این حیوانات برای شما سید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از مقصیت خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اذا اتيتموهن اجرهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین تعام اهل کتاب برای شما حلال است و تعام شما برای آنها حلال و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از اهل کتاب حلالند هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاک دامن باشید نه زناکار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد اعمال او تباه میگردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود يا <تصفيق> أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ على سفر أو جاء, منكم أو جاء أحد منكم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فلم تجدوا ما أنفتي ينم صعيدا طيبا فمسحو فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهركم وليتم منعته عليكم لعلكم تشكرون ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به نماز می صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل مسخ کنید و اگر جنوب باشید خود را بشویید و قسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده یا با زنان تماس گرفته و آمیزش جنسی کرده اید و آب برای غسل یا وضو نیابید با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت و دست ها بکشید خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را بجا آورید و اذکروا نعمت الله عليكم و میثاقه الذی واثقكم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و الله إن الله عليم بذات الصدور و بیاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی را که با تأکید از شما گرفت آن زمان که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که خدا از آن که درون سینه هاست آگاه است. یا ایوها الذین آمنو كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلون و اقرب لیتقوه و الله این الله خبیرون بما تعملون ای کسانیکه که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از مقصیت خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام میدهید باخبر با خبر است وعد الله و الصالحات لهم و عظيم. خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است. والذین كفروا وكذبوا و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اهل دوزخند يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسقوا اذ هم قوم ان يبسقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ای کسانی که ایمان آورده اید نعمتی را که خدا به شما بخشید به یاد آورید آن زمان که جمعی از دشمنان دست داشتند دست به سوی شما دراز کنند و شما را از میان بردارند اما خدا دست آنها را از شما باز داشت از خدا بپرهیزید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند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 وعذّرتمهم وأقرّتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخل ولا أدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد سواء خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده نقیب سرپرست برانگیختیم و خداوند به آنها گفت من با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و به خدا در الحسن بدهید گناهان شما را میپوشانم و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاریست وارد میکنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود از راه راست منحرف کردیده.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 فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ اِنَّ ولی به خاطر پیمان شکنی آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را به آنها گوچ زد شده بود فراموش کردند و هر زمان از خیانتی تازه از آنها آگاه میشوی. مگر عده کمی از آنان ولی از آنها درگذر و, و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حظا و از کسانی که ادعای نسرانیت و یاری مسیح داشتند نیز پیمان گرفتیم ولی آنها قسمت مهمی را از آنچه به آنان تذکر داده شده بود فراموش کردند از این رو در میان آنها تا دامنه قیامت عداوت و دشمنی افکندیم و خداوند در قیامت آنها را از آنچه انجام می‌دادند و نتایج آن آگاه خواهد ساخت يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاء من الله نور و مبین ای اهل کتاب پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردی روشن می سازد به سوی شما آمد و از بسیاری از آن صرف نظر می نماید آری از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. یهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم و يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يهديهم و يهديهم إلى صراط مستقيم. خداوند به برکت آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راه‌های سلامت هدایت می‌کند و به فرمان خود از تاریکی‌ها به سوی روشنایی می‌برد و آنها را به سوی راه راست رهبری نماید لاقد کثر الذین قالو این الله هو المسيح مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر. آنها که گفتند خدا همان مسیح ابن مریم است به طور مسلم کافر شدند بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند چه کسی میتواند تواند جلوگیری کند آری حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست هرچه بخواهد می آفریند. حتی انسانی بدون پدر مانند مسیح و او بر هر چیزی تواناست وقالت اليهود و نحن و ابناء الله و قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهود النسارا قفتاند ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم بگو پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده هر کس را بخواهد و شایسته بداند می و هر کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات می و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست و بازگشته همه موجودات به سوی اوست یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاء بشیر و نذیر و الله علا قدیر ای اهل کتاب رسول ما پس از فاصله و فطرتی میان پیام به سوی شما آمد در حالی که حقایق را برای شما بیان می تا مبادا روز قیامت بگویید نه بشارت دهندهی به سراغ ما آمد و نه بین دهندهی بشارت دهنده و بین دهنده به سوی شما آمد و خداوند بر همه چیز تواناست. و اذ قال موسى لقومه یا الله عليكم اذ جعل فيكم ملوك و آتاكم و آتاكم ما لم احدا من العالمین به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود متذکر شوید هنگامی که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را تا که صاحب اختیار خود قرار داد و به شما چیزهایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود یا قوم دخول الارض المقدسه التى, التي كتب الله لكم ترتدو ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ای قوم به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید که زیانکار خواهید بود موسی این فيها قوما و انا... وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فئن یخرجوا منها, منها خلون گفتند ای موسی در آن سرزمین جمعیتی نیرومند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمیشویم تا آنها از آن خارج شوند اگر آنها از آن خارج شوند ما بارد خواهیم شد. قال رجال من الذين يخافون أن اللَّهُ الله عليهم عَلَيْهِمُ عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولی دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند و خداوند به آنها نعمت داده بود گفتند شما وارد دروازه شهر آنان شوید هنگامی که وارد شدید پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذھب انت وربك فقاتل لاء اننا هنا قاعدون بني اسرائيل گفتند اي موسى تا آنها در آن جا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و با آنان بجنگید ما همین جانش قال ربی انی لا أملك الا نفسی و اخی ففرق بیننا و القوم الفاسقین موسا گفت، پروردگارا، من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم میان ما و این جمعیت گنهکار جدایی بیفتن قال فا انها عليهم اربعین سنتی یتیهون في الارض فلا تاس على القوم خداوند به موسی فرمود این سرزمین مقدس تا چهل سال بر آنها ممنوع است و به آن نخواهند رسید پیوسته در زمین در این بیابان سرگردان خواهند بود و درباره سرنوشت این جمعیت گناهکار غمگین مباش واتلو عليهم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت برادر دیگر گفت من که گناهی دارم زیرا خدا تنها از پرهیزگارن میپذیرند لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من هرگز به قتل تو دست نمیگشایم چون از پروردگار جهانیان میترسم اینی ارید انتبوع بی اثمی و اثمی که من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین من میخواهم تو با گناه من و خودت از این عمل بازگردی و بار هر دو گناه را به دوش و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترقیب کرد سرانجام او را کشت و از زیانکاران شد تدعت الله غراب يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتا أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءه اخي فاصبح من النادمين. سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین جست و جو و کند و کاف می کرد تا به اون نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند او گفت وای بر من آیا من نتوانستم مثل این زاق باشم و جسد برادرم را دفن کنم و سرانجام از ترس روسوائی و بر اثر فشار وجدان از کار خود پشیمان شد من أجل ذلك كتبنا على ذني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و رسولان ما دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارد ذلك لهم خزیم في الدنیا ولهم في الاخرت عذاب عظیم کیفر آنها که با خدا و پیام برش به جنگ برمیخیزند و اقدام به فساد در روی زمین میکنند فقط این است که اعدام شوند یا بدار آویخته گردند یا چهار انگشت از دست راست و پای چپ آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارند الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم فعلمو ان الله غفور رحیم مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان توبه کنند پس بدانید خدا توبه آنها را میپذیرد خداوند آمور زنده و مهربان است یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و بتغوه و ابدؤوا اليه وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیله برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید ان الذين كفروا له ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تنقل بلا منهم ولهم ولهم عذاب اليم بيقين که كافر شدند اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد و مجازات دردناکی خواهند داشت یریدون این یخرجون من النار و ما هم بخارجین منها و ما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم پیوسته میخواهند از آتش خارج شوند ولی نمیتوانند از آن خارج گردند و برای آنها مجازاتی پایدار است والسارق سرریق و سرریقاتون فققا عیده بما كسبا نكالا نهکلم من الله والله عزیز اون دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهاند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است زمانه من بعد ظلمی و اصلح فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را میپذیرد و از این مجازات معاف می شود زیرا خداوند امورزنده و مهربان است. الم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ويعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا نمیدانی که حکومت و فرمان روائی آسمانها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و مستحق بداند کیفر میکند و هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است؟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 آنها که در مسیر کوف شتاب می کنند و با زبان میگویند ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده تو را اندوهگین نسازند و همچنین گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می دهند تا دست برای تکذیب تو بیاوند آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نزد تو نیامدهند آنها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می کنند و به یکدیگر میگویند اگر این که ما میخواهیم به شما داده شد و محمد بر طبق خواسته شما داوری کرد بپذیرید وگرنه از او دوری کنید ولی کسی را که خدا بر اثر گناهان پیدرپی پی او بخواهد مجازات کند قادر به دفاع از او نیستی آنها کسانی هستند که خدا نخواست دلهایشان را پاک کند در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين آنها بسیار به سخنان تو گوش میدهند تا آن را تکذیب کنند مال حرام فراوان میخورند پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا اگر صلاح دانستی آنها را به حال خود واگذار و اگر از آنان صرف نظر کنی به تو هیچ زیانی نمیرسانند و اگر میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد و چگونه حکمونك و فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنین. چگونه تو را به داوری می در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست وانگهی پس از داوری خواستن از حکم تو چرا روی میگردانند آنها مؤمن نیستند إنا أنزلنا التورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذین أسلموا للذین هادوا والربانيون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 و من لم يحكم بما انزل الله فأولائی هم ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن هدایت و نور بود و پیامبران که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم می کردند و همچنین علما و دانشمندان به این کتاب که به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند داوری می نمودند. بنابراین به خاطر داوری بر طبق آیات الهی از مردم نه و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند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 و من لم یحکم بما انزل الله فأولائک هم الظالمون و بر آنها بنی اسرائیل در آن تورات مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد و از قصاص صرف نظر کند کفاره گناهان او محسوب می شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگه است. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا, مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هده و للمتقین و به دنبال آنها عیسی سبن مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود و این کتاب آسمانی نیز تورات را که قبل از آن بود تصدیق می کرد و هدایت تو موعزه برای پرهیزگاران بود وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُمُ الْفَاسِقُونَ اهل انجیل نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی کنند فاسقند و انزلا الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمهم و این کتاب قرآن را به حق اتاكم نازل کردیم در حالی که کتوب پیشین را تصدیق میکند و حافظ و نگاهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن و از هوا و حوصهای آنان پیروی نکن و از احکام الهی روی مگردان. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم. و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد، ولی خدا میخواهد شما را در آنکه به شما بخشیده بیازماید پس در نیکیها بر یک یکدیگر سبقت جویید بازگشت همه شما به سوی خداست سپس از آنکه در آن اختلاف میکردید به شما خبر خواهد داد وأنيحهم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وأهم واحذرهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ و در میان آنها اهل کتاب طبق آن خداوند نازل کرده داوری کن و از هوسهای آنان پیروی مکن و از آنها بر برحضر باش مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند و اگر آنها از حکم و داوری تو روی گردانند بدان که خداوند میخواهد آنان را به خاطر پاری از گناهانشان مجازات کند و بسیاری از مردم فاسقند اف حکم الجاهلیت بغون و من احسن من الله حكما لقوم یوقنون آیا آنها حکم جاهلیت را از تو میخواهند؟ و چه کسی بهتر از خدا برای قومی که اهل یقین هستند حكم می يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإن له منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را ولی و دوست و تکیه گاه خود انتخاب نکنید آنها اولیای یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوٓيٰ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ لَنَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا في أَنفُسِهِمْ دادمين. ولی کسانی را که در دلهایشان است میبینی که در دوستی با آنان بر یک دیگر پیشی میگیرند و میگویند میترسیم حادثه ای برای ما اتفاق بیفتد و نیاز به کمک آنها داشته باشیم شاید خدا بند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتند پشیمان گردند و یقولوا الذین آمنوا اه هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم اینهم لمعکم آنها که ایمان آورده اند آیا این منافقان همانها هستند که با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که با شما هستند چرا کارشان به اینجا رسید آری اعمالشان نابود گشت و زیانکار شدند يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين الذين على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تاليم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم اي كثاني که ایمان آورده اید هر کس از شما از آئین خود بازگردد به خدا زیانی نمیرساند. خداوند جمعیتی را میآورد که آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند آنها در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری حراسی ندارند این فضل خداست که به هر کس بخواهد و شایسته ببیند میدهد و فضل خدا وسیع و خداوند داناست. این ما الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون <تصفيق> الصلاه وهم سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده همانها که نماز را برپا می و در حال رکوع زکات می دهند. و من يتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب, الله فإن حزب الله هم الغالبون و کسانی که ولایت خدا و پیام بر او و افراد با ایمان را بپذیرند پیروزند زیرا حزب و جمعیت خدا پیروز است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 ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی از اهل کتاب که آین شما را به باد استهزا و بازی میگیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید. و اینا آنها بانهم قوم لا يعقلون آنها هنگامی که از آن میگویید و مردم را به نماز فرا میخوانید آن را به مسخره و بازی میگیرند این به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردند قل یا اهله الكتاب هل تنقمون منا الا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبِلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ, وأن أكثركم فَاسِقُونَ بگو ای اهل کتاب آیا به ما خورده میگیرید؟ مگر ما چه کرده ایم؟ جز این که به خداوند و به آن که برما نازل شده و به آن که پیش از این نازل گردیده ایمان آورده این؟ و این به خاطر آن است که بیشتر شما از راه حق خارج شده اید قل هل اونبی اکن بی من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب عليه وجعل منهم منه والخنازير وعبد الطاغوت و عبدالطاقوت اولئی کشر مکانا عن سوائی سبیل بگو آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا بدتر از این است باخبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده و مسخ کرده و از آنها میمونها و خوکهایی قرار داده و پرستش بد کرده اند موقعیت و محل آنها بدتر است و از راه راست گمرهترند. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون انگامی که نزد شما میآیند میگویند ایمان آورده ایم اما با کفر وارد میشوند و با کفر خارج میگردند و خداوند از آن چه میکردند می‌کردند آگاه‌تر است و را كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الصحت لا ما كانوا يعملون بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تادی و خوردن مال حرام شتاب می‌کنند چه زشت است کاری که انجام می‌دادند لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون چرا دانشمندان نصارا و علمای یهود آنها را از سخنان گناه و خوردن مال حرام نحی نمیکنند. چه زشت است عملی که انجام میدادند؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك مرهم بك طغيان وكفرا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 دست خدا با زنجیر بسته است دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است هر گونه بخواهد میبخشد ولی این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر تقیان و کفر بسیاری از آنها می افزایند و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتش جنگی افروختند خداوند آن را خاموش ساخت و برای فساد در زمین تلاش می کنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد. ولو أن اهل الكتاب امنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم ولا ادخلناهم, ولا ادخلناهم جنات نعیم. و اگر اهل كتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند گناهان آنها را می بخشیم و آنها را در باغ های پر نعمت بهشت وارد میسازیم.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 و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان آنها نازل شده قرآن دارند، از آسمان و زمین روزی خواهند خورد جمعی از آنها معتدل و میان رو هستند ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می دهند یا <تصفيق> رسول ای پیامبر آنچه رَبِّكَ از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل اليكم. وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين بگو ای أهل كتاب شما هیچ عائین صحیحی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا دارید ولی آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر تقیان و کفر بسیاری از آنها می افساید بنابراین از این قوم کافر و مخالفت آنها امگین مباش. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادوا والصابئون والنصارى من آمَنَ بالله مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ آنها که ایمان آورده اند <انتص> و یهود و و مسیحیان هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند نه ترسی آنهاست و نه غمگین خواهند شد لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا ایلیهم قلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم ولی هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف و دلخواه آنها می آورد، ادعی را تکزیب می کردند و ادعی را می کشند و تكون ان لا تکون و ثم تاب الله علیهم ثم تاب الله عليهم ثم, تاب الله عليهم ثم و كثير منهم والله الله بما يعملون. گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود از این رو از دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق نابینا و کر شدند سپس بیدار گشتند و خداوند توبه آنها را پذیرفت دیگر بار در خواب قفلت فرو رفتند و بسیاری از آنها كور و شدند و خداوند به آنچه انجام میدهند بیناست لقد كفر الذین قالوا إن الله هو المسیح بن مریم وقال المسيح يا بنی إسرائيل اعبدو الله ربی وربكم انهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم النار وما للظالمين من انصار آنها که گفتند خداوند همان مسیح فرزند مریم است به یقین کافر شدند با این که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل خداوند یگانه را که پروردگار من و شماست پرستش کنید زیرا هر کس شریکی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران یار و یاوری ندارند لقد کسرالذین قالو این الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد وان لم ينته عما يقولون ليمسن ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ان كه گفتند خداوند یکی از سه خداست نیز به یقین کافر شدند معبودي جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه چه دست بر ندارند عذاب دردناکی به کافران آنها خواهد رسید افلا یتوبون و یستغفرونه والله غفور آیا به سوی خدا باز نمی‌گردند و از او طلب آمرزش نمی در حالی که خداوند آمرزنده مهربان است. المسیح بن مریم إلا رسول قد خلت من قبلی الرسل و امه صدیقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان لا مسیح فرزند مریم فقط فرستاده خدا بود پیش از نیز فرستادگان دیگری بودند مادرش زن بسیار راستگویی بود هر دو قضا میخوردند. خوردند بنگر چگونه نشانه ها را برای آنها آشکار می سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده می قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم بگو آیا جز خدا چیزی را میپرستید که مالک سود و زیان شما نیست و خداوند شنوا و داناست قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ولا تتبعوا, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبِلُوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وضلوا, وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بِقُوا أي أَهْلِ كِتَابِ در دین خود قلوب و زیاد روی نکنید و غیر از حق نگویید و از حوصهای جمعیتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی ننمایید. لعین الذین کفرو من بنی اسرائیل على لسان داود و عیس بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی بن مریم لعن و نفرین شدند این به خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز مینمودند. كانوا لا عن منكر از اعمال زشتی که انجام میدادند یکدیگر را نهی نمی کردند چه بدکاری انجام میدادند ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم انسخط الله عليهم وفي العذاب وفی العذاب هم خالدون بسیاری از آنها را میبینی که کافران و بدپرستان را دوست میدارند و با آنها طرح دوستی میریزند نفس سرکش آنها چه بد اعمالی از پیش برای معاد آنها فرستاد که نتیجه آن خشم خداوند بود و در عذاب الهی جافدان خواهند ماند ولو لو کانو بالله و انزل منهم فاسقون. و اگر به خدا و پیام و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند هرگز آنان کافران را به دوستی اختیار نمی کردند ولی بسیاری از آنها فاسقند. لا تجدن أشد سعدا ل الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى ذالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون به طور مسلم دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی که می که میگویند ما نصارا هستیم این به خاطر آن است که در میان آنها افرادی عالم و تارک دنیا هستند و آنها در برابر حق تکفر نمی وإذا و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند چشمهای آنها را میبینی که از شوق عشق میریزد به خاطر حقیقتی که دریافتند آنها میگویند پروردگارا، را ایمان آوردیم پس ما را با گواهان و شاهدان حق در زمره یاران محمد بنویس. و ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره سالحان قرار دهد فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جنات جَنَّاتِ تَجْرِي تحتها تَحْتِ الْأَنْهَارُ خالدين فيها فِيهَا جزاء جَزَاءُ خداوند به خاطر این سخن به آنها باغهایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش نهرها جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران والذین و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همانها اهل دوزخند يا یا الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا این الله لا يحب المعتدین ای کسانی که ایمان آبرده اید. چیزهای پاکیزه که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمیدارد. وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون و از نعمتهای حلال و پاکیزهی که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید لا یعاخذکم الله باللغوی فی ایمانکم ولكن ولیکن یعاخذکم بما عقدتم الايمان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 وحفظو ایمانکم کذالک یبین الله لکم آیاته لعلكم تشکرون خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و خالی از اراده مؤاخزه نمی کند ولی در برابر سوگندهایی که از روی اراده محکم کرده اید مؤاخزه می نمازند. کفاره این گونه قسمها اِت عام ده نفر مستمند از قضاهای معمولی است که به خانواده خود میدهید یا لباس پوشاندن بر آن ده نفر و یا آزاد کردن یک برده و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد سه روز روزه میگیرد این کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سوگند یاد می کنید و مخالفت مینمایید و سوگندهای خود را حفظ کنید و نشکنید خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند شاید شکر او را به جا آورید یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والازلام رجس من اعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و ازلام نوعی بخت آزمایی پلید و از عمل شیطان است از آنها دوری کنید تا رستگار شوید <سلح> انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون میخواهد به وسیله شراب و قمار درمیان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد آیا خودداری خواهید کرد واطيع الله واطيع الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و از مخالفت فرمان او بترسید و اگر روی برگردانید مستحق مجازات خواهید بود و بدانید بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما تقوا اذا ما تقوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وامنوا ثم تقوا وامنوا ثم تقوا واحسنوا والله يحب المحسنين بركتاني كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند گناهی در آنچه خورده اند نیست اگر تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند سپس تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد يا کسانی الذين ایمان آورده الله بشيء من الصيد تناله ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن بعد ذلك فله عذاب خداوند شما را به چیزی از شکار که دستها و نیزه هایتان به آن می نیازماگت تا معلوم شود چه کسی در نهان از خدا میترسد. و هر کس بعد از آن تجاوز کند، مجازات دردناکی خواهد داشت. یا ای الّذین آمَنوا لا الصید و أنتم حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعِدٍ مِنْكُمْ هَدِيَةً هدياً بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما, أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال ذلك صيام أمره عاف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ای کسانی که ایمان آوردید در حال احرام شکار نکنید و هر کس از شما امدن آن را به قتل برساند باید کفارعی معادل آن از چهار پایان بدهد کفارعی که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به حریم کعبه برسد یا به جای قربانی اطعام مستمندان مندان کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو کرده ولی هرکس کس تکرار کند خدا از او انتقام میگیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است احل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم ولی لسیارة وحرم علیكم صید البر ما دمتم حرما واتقو الله الذی إليه تحشرون صید دریا و تعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا در حال احرام از آن بهرهمند شوید ولی مادام که محرم هستید شکار سهرا برای شما حرام است و از نافرمانی خدایی که به سوی او محشور می شوید بترسید جعل الله الكعبة البیت الحرام قیام للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله وان الله بكل شيء علیم خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی های نشاندار را. این گونه احکام حساب شده و دقیق به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است میداند، و خدا به هر چیزی داناست يعلمون ان الله شديد العقاب و ان الله غفور رحیم بدانید خدا دارای مجازات شدید و در عین حال آمرزنده و مهربان است ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون پیامبر وظیفه ای جز رسانیدن پیام الهی ندارد و مسئول اعمال شما نیست و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می دارید می قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلكم تفلحون بگو هیچگاه ناپاک و پاک مساوی نیستند هرچند فزونی ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد از مخالفت خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد شاید رستگار شوید یا ایوها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء این تبدلکم لكم و این تسألوا و این تسألو عنها حین ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حلیم ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزها این نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت می کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سؤال کنید برای شما آشکار می شود خداوند آنها را بخشیده است و خداوند آمرزنده و بردبار است قدس جمعیت پیشینیان شما از آن سوال کردند و سپس با آن به مخالفت برخواستند ما جعل الله من دحيره ولا سائبه ولا, وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون خداوند هیچ کون بهیره و سائبه و وسیله و هام قرار نداده است اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت استفاده از آنها را به عللی حرام میدانستند و این بدعت در اسلام ممنوع شد ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ میبندند و بیشتر آنها نمیفهمند وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون و همین که به آنها گفته شود به سوی آن خدا نازل کرده و به سوی پیام بر بیایید میگویند آنچه از پدران خود یافته این ما را بس است آیا اگر پدران آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز از آنها پیروی میکنند؟ یا علیکم انفسکم لا يضروكم من ضل اذا الله مرجعكم جميعا بما كنتم تعملون ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید اگر شما هدایت یافتید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از آن عمل می کردید آگاه می سازد یا ایوها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان اثنان ذوى عدل منکم او آخران من غیرکم این انتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله, فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا ولا نكتم الله انا اذا کسانی که ایمان آوردید هنگامی که مرگ یکی از شما فرارسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبت یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما فرارسید و در آنجا مسلمانی نیافتید دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آنها را بعد از نماز نگاه می‌دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم هرچند در مورد خیشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی که غناکاران خواهیم بود. فانعذر علیه انه مستحق اثم فاخران فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا و معتدینا اینا ایذن لمن الظالمین و اگر اطلاعی حاصل شود که آن دو مرتکب گناهی شده اند و حق را کتمان کرده اند دو نفر از کسانی که نسبت به میت اولا هستند به جای آنها قرار میگیرند و به خدا سوگند یاد میکنند کنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است و ما تجاوزی نکرده این که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود ذالک ادنا ان یاتوا بالشهاده علی وجهها ام یخافو ام ان ترد ايمان بعد ايمانهم و الله و اسمعوا والله لا يهدی القوم الفاسقين. این کار نزدیک تر است به اینکه گواهی به حق دهند و از خدا بترسند و یا از مردم بترسند که دروغشان فاش گردد و سوگندهایی جای سوگندهای آنها را بگیرد از مخالفت خدا بپرهیزید و گوش فرادرید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی‌کند یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک أنت علام الغیوب از روزی به تفصیل که خداوند پیامبران را جمع میکند و به آنها میگوید در برابر دعوت شما چه پاسخی به شما داده شد میگویند ما چیزی نمیدانیم تو خود از همه اسرار نهان آگاهی اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس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 وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, فقال الذين كفروا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ بِخَاطِرْ بِيَا بَرْ هنگامی را که خداوند به ایسابن مریم گفت یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم که در گاهواره و به هنگام بزرگی با مردم سخن می گفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن میدمیدی و به فرمان من پرنده ای میشد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا میداری و مردگان را نیز به فرمان من زنده می کردی. و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی ولی جمعی از کافران آنها گفتند اینها جز صحف آشکار نیست وید او حد إلى الحواین ینبی و باصولی قالوا قالونشهدبی ان نه سلمون و به یاد آور زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید آنها گفتند ایمان آوردیم. و گواه قال الحواريون يا عیسی بن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقو الله این کنتم در آن هنگام که حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم آیا پروردگارت میتواند تواند مائده ای از آسمان بر ما نازل کند او در پاسخ گفت از خدا بپرهیزید اگر با ایمان هستید قالو نريد ان ناكل منها و تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها ونكون عل من الشهدن گفتند ما نظر بدی نداریم میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما به رسالت تو مطمئن گردد و بدانیم به ما راست گفت ای و بر آن گواه باشیم قال عیسی بن مریم اللهم ربنا انزل علينا اللهم ربنا انزل علينا مأیده من السماء تكون, تكون لنا عيد لأولنا و آخرنا و آيت منك ورزقنا وأنت خير الرازقين ای بن مريم عرض کرد پروردگارا از آسمان ما ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما ایدی باشد و نشانه ای از تو و به ما روزی ده تو بهترین روزی دهندگانی قال الله اینی منزلها علیکم فَمَنْ يكفر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا دعای او را مستجاب کرد و فرمود من آن را بر شما نازل می کنم. ولی هر کس از شما بعد از آن کافر گردد و راه انکار پوید، او را مجازاتی میکنم کنم که اهدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم و ایذ قال الله یا بن مریم اا انت قلت و اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك اِنَّكَ اَن تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ با آنگاه که خداوند به ای سبن مریم میگوید آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ او میگوید منزدهی تو من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم اگر چون این سخنی را گفته باشم تو میدانی تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست آگاه نیستم به یقین تو از تمام اثرار و پنهانی ها مَا من قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم و انت على كل شيء شهید. من جز آن که مرا به آن فرمان دادی چیزی به آنها نگفتم به آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی این توعذیبهم فا این لهم عبادک این توعذیبهم این عبادک و تغفر لهم فإن أنت العزيز الحكيم با این حال اگر آنها را مجازات کنی بندگان تو اند. و اگر آنان را ببخشی توانا و حكیمی قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها خالدين فيها أبدا فیها ابدا رضی الله عنهم و عنه ذالک الفوز خداوند می امروز روزیست که راستی راست به آنها سود میبخشد برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن گذرد و تا ابد جاودانه در آن میمانند هم خداوند از آنها خشنوده است و هم آنها از خدا خوشنودند این رستگاری بزرگ است لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست ازان خداست و او بر هر چیزی تواناست